توایل تارپ را به عنوان یکی از بزرگترین رقصنده ها و تراحان رقص عصر مدرن میشناسند. در سال 1992 جایزه بورسیه مک آرتور به او اعطا شد که غالباً آن را بورسیه نابغه ها می خانند. او این کمک هزینه را صرف برگزاری تور در دنیا و اجرای کارهای مختص خودش کرد. تارپ نیز، امده موفقیت خودش را به عادتهای ساده و روزمره نسبت می دهد. او می نویسد هر روز از زندگیم را با یک رسم همیشگی آغاز می کنم. ساعت پنج و سی دقیقه صبح بیدار می شوم، لباس ورزشی، سوی شرت و کلاهم را می پوشم. از خانه هم در منحتن خارج می شوم، تاکسی می گیرم و به راننده می گویم مرا به باشگاه پامپینگ آیرون، در تقاطع خیابان 91 و بزرگ راه اول برساند و در آنجا به مدت دو ساعت ورزش میکنم. رسم روزانم، حرکات کششی و تمرینات با وزنه در باشگاه نیست، بلکه دقیقا همان تاکسی گرفتن است. همان لحظه ای که به راننده میگویم، میخواهم فلانجا بروم تا آداب و رسوم هر روزم را انجام دهم. این، یک اقدام ساده است، اما انجام هر روزه آن به یک عادت تبدیل شده و به همین دلیل تکرار پذیر و سحل الوصول شده است. احتمال اینکه یک روز آن را انجام ندهم یا به شکل متفاوتی انجام دهم خیلی کم است. آن را هم باید یک آیتم دیگر در میان روتین هایم قرار دهم که بدون تفکر و تعمل زیاد انجام می دهم. گرفتن تاکسی در هر روز صبح شاید اقدامی کوچک باشد اما یک نمونه عالی برای قانون سوم تغییر رفتار است. محققان براورد کردند بین 40 الی 50 درصد از اقدامات ما در طول روز از روی عادت انجام می‌گیرد. این یک تغییر قابل توجه است اما تاثیر واقعی عادات شما بالاتر از این آمار و ارقام است. عادت‌ها انتخاب‌های خودکاری هستند که روی تصمیمات آگاهانه بعدی تأثیر می‌گذارند. بله، یک عادت می‌تواند فقط طی چند ثانیه انجام شود، اما می‌تواند اقداماتی را که چند دقیقه یا چند ساعت بعد انجام می‌گیرند، شکل بدهد. عادت‌ها همچون پیچ ورود به بزرگراه هستند. شما را به سمت جاده هدایت می‌کنند. و پیش از اینکه متوجه شوید، با سرعت به سمت رفتار بعدی حرکت می کنید. به نظر میرسد رسد، ادامه دادن کارهایی که پیشتر انجام داده اید، راحتتر از شروع کارهای متفاوت باشد. دو ساعت پای یک فیلم بد مینشینید و آن را تماشا می کنید. به خوردن میان وعده ادامه می دهید، حتی اگر معده شما پر شده باشد. قرار است، گوشی خود را فقط برای یک ثانیه چک کنید، اما بیست دقیقه آینده را صرف زل زدن به صفحه نمایش آن می کنید. در همین راستا، هایی که بدون تعمل انجام می دهید، غالبا تعیین کننده انتخاب انتخابهای متفکرانیتان هستند. هر روز غروب یک لحظه کوتاه وجود دارد. معمولاً هوش ساعت پنج و پانزده دقیقه، که تکلیفم برای ساعات باقی مانده شب را مشخص می‌کند در این لحظه همسرم از سر کار می‌آید و در این شرایط یا لباس ورزشی می‌پوشیم و به سمت باشگاه می‌رویم یا اینکه روی مبل لم می‌دهیم زنگ میزنیم، غذای هندی بیاورند و سریال اداره را می‌بینیم همچون تو آیلاتارپ که تاکسی میگیرد رسم ما این است که لباس ورزشی بپوشیم اگر من لباس ورزشی بپوشم، میدانم به ورزش خواهیم رفت. پس از برداشتن گام اول، اقدامات متعاقب، رانندگی به سمت باشگاه، تصمیم گیری درباره حرکات ورزشی، انجام آنها آسان میشوند. هر روز لحظات پرشماری وجود دارند که یک تاثیر قابل توجه را به جا گذارند. از این انتخاب های کوچک تحت عنوان لحظات تعیین کننده نام میبرم. لحظه ای که بین سفارش غذا از بیرون یا پختن شام تصمیم میگیرید. لحظه ای که بین راندن ماشین یا سوار شدن بر دوچرخه تصمیم میگیرید. لحظه ای که بین شروع به انجام تکالیف منزل یا برداشتن دسته کنسول تصمیم میگیرید. این انتخاب ها همچون یک دوراهی هستند. تفاوت میان یک روز خوب و یک روز بد غالباً به اتخاذ چند تصمیم مفید و سالم در لحظات تعین کننده بستگی دارد. هر کدام از این لحظات همچون یک دوراهی هستند و انباشته شدن این انتخاب ها در طول مسیر است که می تواند در نهایت خروجی های متفاوتی را برای ما بسازد. لحظات تعین کننده گزینه های موجود برای وضعیت آینده شما را تعیین می کند. به عنوان مثال ورود به رستوران یک لحظه تعیین کننده است. زیرا غذای ناهار شما را تعیین می کند. عملا مختارید، هرچه دوست دارید را سفارش دهید. اما از دیدگاه کلان فقط قادر به سفارش دادن از روی آیتم های داخل منو هستید. اگر به رستوران مخصوص استیک بروید، می توانید استیک گوشت راسته یا ریبایی بخورید نه سوشی گزینه های شما با توجه به موارد موجود محدود می شوند انتخاب اول شماست که این گزینه ها را شکل می دهد این عادت ها هستند که مسیر نهایی ما را مشخص می کنند به همین دلیل تسلط بر لحظات تعیین کننده طول روز اهمیت زیادی دارد هر روز دارای لحظات فراوانی است اما تعداد محدودی انتخاب مرسوم وجود دارند که مسیر شما را تعیین کنند. این های کوچک روی یکدیگر انباشته میشوند و هر کدام از آنها نحوه پیمایش شما در بازه زمانی بعدی را تعیین میکنند. عادتها نقطه ورود هستند نه پایان در مثال ما آنها نقش تاکسی را دارند نه باشگاه. قانون دو دقیقی حتی زمانی که می دانید باید شروع کوچکی داشته باشید، امکان دارد به سادگی اصیر انتخابهای خیلی بزرگ شوید. وقتی رویای ایجاد یک تغییر را در ذهن می هیجان بر شما قلبه می کند و در نهایت اقدامات زیاده از حد را در بوزه زمانی بسیار کوتاه انجام می دهید. ثر راهی که برای مقابله با این گرایش یافتهام بهرهبرداری از قانون دو دقیقه است. این قانون می گوید وقتی یک عادت جدید را شروع کنید که اجرای آن به کمتر از دو دقیقه زمان نیاز داشته باشد، متوجه خواهید شد تقریبا همه عادت ها می توانند در مقیاس دو دقیقه ای فشرده شوند. عادت هر شب قبل از خواب کتاب بخوان، به یک صفحه بخان تبدیل می شود عادت سی دقیقه یوگا کار کن به تشک یوگا را پهن کن تبدیل می شود عادت برای کلاس مطالعه کن به جزوات را باز کن تبدیل می شود عادت لباس های شست شده را تا کن به یک جفت جراب تا کن تبدیل می شود عادت مسافت سه مایل را بدو به بند کتانی نهایت را به بند تبدیل می شود. بحث ما این است که تا می توانید شروع عادت را ساده کنید. هرکس می تواند به مدت یک دقیقه مدیتیشن کند، یک صفحه بخواند یا یک تکه لباس را کنار بگذارد. همانطور که گفتیم این یک استراتژی قدرتمند است. زیرا، وقتی اقدام به کار درست را شروع کردید، پیگیری و ادامه آن ساده‌تر می شود. یک عادت جدید نباید حس چالش و کار شاق را داشته باشد. اقدامات متعاقب می چالش برانگیز باشند اما دو دقیقه اول باید ساده باشد. آنچه میخواهید یک دروازه ورود است که شما را به مسیر بهرهوری وارد کند. معمولا می توانید با ردبندی اهداف از بسیار آسان تا بسیار سخت دروازه هایی را که به خروجی های مطلوبتان منتهی می شوند بیابید. مثلا دویدن در یک ماراتون بسیار دشوار است. دویدن به مسافت 5 کیلومتر دشوار است. ده هزار قدم پیاده روی یک کار متوسط است ولی پوشیدن کتانی خیلی راحت است. شاید هدفتان دویدن در یک ماراتون باشد، اما دروازه ورود شما پوشیدن کتانی است. به ترتیب شما از قانون دو دقیقه پیروی می بسیار آسان، پوشیدن کتانی. آسان، ده دقیقه پیاده روی. متوسط، ده هزار قدم پیاده روی. دوشوار، پنج کیلومتر دویدن، بسیار دشوار دویدن در ماراتون بسیار آسان، نوشتن یک جمله، آسان نوشتن یک پاراگراف، متوسط، نوشتن هزار کلمه، دشوار نوشتن یک مقاله پنج هزار کلمه ای، بسیار دشوار، نوشتن یک کتاب بسیار آسان باز کردن جزوه آسان مطالعه به مدت ده دقیقه متوسط مطالعه به مدت سه ساعت دشوار گرفتن نمره ای در همه دروس بسیار دشوار کسب مدرک دکتری افراد غالباً فکر می کنند اگر یک صفحه مطالعه یا یک دقیقه مدیتیشن یا برقراری یک تماس برای بازاریابی را هدف گذاری کنیم عجیب است. اما هدف نهایی ما این نیست. ما می روی آن عادت تسلط پیدا کنیم. حقیقتا باید یک عادت جا بیفتد تا بتواند بهبود پیدا کند. اگر نتوانید مهارتهای پایه‌ای را به درستی یاد بگیرید امید چندان زیادی برای تسلط بر جزئیات کار وجود ندارد به جای اینکه سعی کنید از همان ابتدا یک عادت ایدئال را مهندسی کنید یک کار ساده را به صورت مداوم انجام دهید باید ابتدا به استاندارد برسید تا بتوانید سراغ سازی بروید وقتی بر همین مهارت‌های اولیه مسلط شدید همین دو دقیقه ابتدایی می تواند به رسم ابتدایی برای یک روتین بزرگتر تبدیل شود. این صرفا ترفندی برای ساده سازی عادت ها نیست، بلکه در واقع یک روش ایدئال برای تسلط بر مهارتی دشوار است. هرقدر ابتدای یک پروسه را به شکل روتین و طبق یک عادت همیشگی پی بگیرید، احتمال این که بتوانید آن پروسه را با تمرکز عمیق پیش ببرید و کارهای بزرگ انجام دهید بیشتر می شود. اگر هر بار پیش از ورزش با یک پروسه یکسان خودتان را گرم کنید، می توانید خیلی راحتتر به عمل عملکرد خود دست یابید. با پیروی از یک رسم خلاقانه و ثابت، می توانید ورود خود به پروسه دشوار آفرینش را ساده تر کنید. اگر یک مجموعه عادت ثابت را برای پیش از خوابتان توسعه دهید، می توانید هر شب در ساعت معقولتری به رخت خواب بروید. شاید نتوانید کل پروسه را به صورت ناخداغاه در آورید، اما همیشه می توان کاری کرد که گام اول بدون تعمل برداشته شود. کاری کنید شروعتان آسان شود و ادامه کار از پی آن خواهد آمد. قانون دو دقیقهی می‌تواند در نظر برخی افراد همچون یک ترفند باشد. می‌دانید که هدف واقعی شما بیش از این دو دقیقه ساده است. پس انگار دارید خودتان را گول می زنید. هیچ کس صرفاً برای مطالعه یک صفحه یا انجام یک دراز و نشست یا باز کردن جزوه شروع شوق ندارد. اگر می دانید این قانون صرفاً یک ترفند ذهنی است، چرا باید فری به آن را بخورید؟ اگر قانون دو دقیقهی حس اجبار را برایتان به همراه دارد، این کار را انجام دهید. کار را به مدت دو دقیقه انجام دهید و سپس متوقف شوید. دویدن را شروع کنید، اما باید پس از دو دقیقه متوقف شوید. مدیتیشن را شروع کنید، اما فقط برای دو دقیقه. مطالعه کنید، اما، پس از دو دقیقه آن را کنار بگذارید. این صرفاً یک استراتژی برای شروع نیست بلکه کل پروسه به همین دو دقیقه ختم می شود. عادت شما فقط 120 ثانیه پا بر جامی ماند. یکی از مخاطبانم از این استراتژی برای کاهش بیش از 45 کیلوگرم وزن کمک گرفته است. در ابتدا او هر روز به باشگاه می رفت. اما به خودش می گفت که اجازه ندارد بیش از پنج دقیقه در آنجا بماند. به باشگاه می رفت. به مدت پنج دقیقه تمرین می کرد و به محض اینکه وقتش تمام می شد بر می گشت. پس از چند هفته به خودش آمد و فکر کرد که خب من همیشه اینجا می آیم. شاید بهتر است مدت زمان بیشتری را در باشگاه بمانم چند سال بعد اضافه وزنش از بین رفته بود. نوشتن نیز یک نمونه دیگر را فراهم می کند. تقریبا همه افراد با بیرون راندن افکار از ذهن و نوشتن آن روی کاغذ منتفع می شوند. اما اکثرا پس از چند روز این کار را متوقف می کنند یا به کل آن را نادیده می‌گیرند. زیرا نوشتن کار خسته کنندهی به نظر می رسد. رمز کار این است که همیشه تا جایی عادت خود را ادامه دهید که فشاری به شما وارد نشود. گرک مکیون، مشاور رهبری اهل انگلستان، یک عادت نگارش روزانه را شکل داده است که بر اساس آن همواره کمتر از مقدار مد نظرش می نویسد. او همیشه پیش از اینکه نوشتن مایه عذاب او شود، این کار را متوقف می کند. ارنست همینگوی نیز توصیه این مشابه برای هر گونه نگارش دارد. او می گوید بهترین راه این است که همواره در اوج و زمانی که عملکردتان خوب است متوقف شوید استراتژیهای اینچنینی یک دلیل دیگر هم برای تأثیر گذاری دارند آنها هویتی که میخواهید بسازید را تقویت میکنند اگر پنج روز پشت سر هم در باشگاه حاضر شوید ولو اینکه به مدت دو دقیقه باشد رأی های مثبتی را برای هویت جدیدتان سادر می کنید. نگران تناسب اندام خود نیستید. شما روی تبدیل به شخصیتی متمرکز شده اید که دوست ندارد در جلسات باشگاهش غیبت کند. کوچکترین گام هایی را برمی دارید که تنیید کننده ی نوع شخصیت مد نظرتان هستند. به ندرت چون این تفکری را راجع به این تغییرات داریم، زیرا همه افراد مجزوب هدف نهایی هستند. اما یک درازنش است بهتر از این است که اصلا ورزش نکنید. یک دقیقه تمرین گیتار بهتر از این است که اصلا تمرین نداشته باشید. یک دقیقه مطالعه بهتر از این است که هیچگاه کتاب دست نگیرید. همیشه کمتر انجام دادن بهتر از انجام ندادن است. در یک مقطع وقتی عادتهایتان را جا انداختید، و هر روز آن کار را تکرار کردید، می توانید قانون دو دقیقی را با تکنیکی تحت عنوان شکل دهی به عادت ترکیب کنید تا مقیاس عادت شما به هدف نهاییتان نزدیک شود. کارتان را با تسلط بر دو دقیقی ابتدایی کوتاهترین نسخه از رفتارتان آغاز کنید. سپس به گام میانی بروید و همین پروسه را تکرار کنید. تمرکزتان فقط روی همان دو دقیقه اول و تسلط بر آن باشد و سپس به سطح بعدی منتقل شوید. سرانجام به همان عادتی که از ابتدا مد نظرتان بود می رسید در حالی که تمرکزتان کماکان مثل قدیم است روی همان دو دقیقه اول از رفتارتان. نمونه های شکل دهی به عادت صبح زود بیدار شدن فاز یک هر شب ساعت ده خانه باشید فاز دو همه دستگاه ها، تلویزیون، گوشی و غیره را هر شب ساعت ده خاموش کنید فاز سه هر شب ساعت ده در رخت خواب باشید. کتاب بخوانید با همسرتان صحبت کنید. فازه چهار هر شب ساعت ده چراغ ها را خاموش کنید. فازه پنج هر روز ساعت شش صبح از خواب بیدار شوید. وگان گیاهخوار شدن فاز یک، خوردن سبزیجات در هر وعده غذایی را آغاز کنید. فاض دو، خوردن حیوانات چهارپا را متوقف کنید. گاو، خوک، بره و غیره. فاض سه، خوردن حیوانات دوپا را متوقف کنید. مرغ، بوغلمون و غیره. فاز چهار، خوردن حیوانات بدون پا را متوقف کنید، ماهی، صدف، حلزون و غیره. فاز پنج، مصرف همه محصولات حیوانی را متوقف کنید، تخم مرغ، شیر، پنیر. شروع به ورزش فازه یک، لباس ورزشی بپوشید. فاز دو، از در خانه بیرون بروید. پیاده روی را امتحان کنید. فاز سه، به سمت باشگاه برانید. به مدت پنج دقیقه تمرین کرده و سپس آنجا را ترک کنید. فاز چهار، حداقل اقل یک بار در هفته، به مدت پانزده دقیقه تمرین کنید. فاض پنج سه بار در هفته تمرین کنید. تقریبا همه اهداف بزرگتر در زندگی میتوانند به یک رفتار دو دقیقه‌ای تبدیل شوند. باید یک زندگی سالم و طولانی مدت داشته باشم. باید متناسب بمانم. باید ورزش کنم. باید لباس های ورزشیم را بپوشم. دوست دارم زندگی مشترک رضایت بخشی داشته باشم. باید همسر خوبی باشم. باید هر روز کاری کنم که زندگی همسرم آسانتر شود. باید وعده های غذایی هفته بعد را برنامه ریزی کنم. هر زمان که در تلاش هستید، تا به یک عادت پایبند بمانید، می توانید قانون دو دقیقه‌ای را به کار بگیرید. این یک راه ساده برای تسهیل عادت‌هایتان است. خلاصه فصل عادت‌ها می توانند طی چند ثانیه انجام شوند، اما طی دقایق یا ساعت‌های آتی بر رفتار شما تاثیر میگذارند. بسیاری از عادت در لحظات تعیین کننده رخ میدهند. عادت ها همچون دوراهی هستند، بگونه ای که یا شما را به مسیر بهرهوری یا به مسیر خطا رهنمون می کنند. قانون دو دقیقه ای می گوید وقتی یک عادت جدید را شروع می کنید باید، اجرای آن به کمتر از دو دقیقه زمان نیاز داشته باشد. هرقدر رسم و رسوم دقیق تری را برای شروع یک عادت بنیان بگذارید، احتمال اینکه بتوانید به تمرکز عمیق و لازم برای اجرای کارهای بزرگ دست بیابید بیشتر است. پیش از سازی خودتان را استاندارد کنید. ابتدا، باید عادت وجود داشته باشد که بتوانید آن را ارتقاد چهارده چگونه عادتهای خوب را ناگذیر؟ و عادت های بد را محال کنید. در تابستان 1830، ویکتور هوگو با یک ضرب العجل غیر ممکن مواجه شد. دوازده ماه پیشتر نویسنده فرانسوی، قول یک کتاب جدید را به ناشر جدیدش داده بود اما به جای نوشتن ایام سال را صرف پروژه های دیگر سرگرمسازی مهمانان و تأخیر انداختن در کارش کرد ناشر که درمانده شده بود شش ماه زمان بیشتر را به عنوان زربالعجل نهایی تعیین کرد کتاب باید تا فوریه سال 1831 به پایان می رسید. هوگو پرنامه عجیب برای غلبه بر عادت اطلاف وقتش ایجاد کرد. او همه لباسهایش را جمع کرد و از دستیارش خواست که آنها را در صندوقی بزرگ بگذارد و در آن را قفل کند. او غیر از یک شال بزرگ هیچ لباس دیگری برای پوشیدن نداشت. او که هیچ لباس مناسبی برای بیرون رفتن نداشت، در اتاق مطالعهش ماند و در طول پاییز و زمستان سال 1830 با سرعت فراوانی شروع به نوشتن کرد. کتاب گوش پشت نوتردام دو هفته زودتر از ضرب العجل و در تاریخ 14 همه جانویه 1831 منتشر شد. گاهی اوقات موفقیت کمتر به ساده سازی آدتهای آسان، و بیشتر به دشوارسازی سازی عادتهای بد مربوط می شود. این مکوس قانون سوم تغییر رفتار است، آن را دشوار کنید. اگر خودتان را دائما در تقلا برای پیگیری برنامه هایتان می‌توانید می از ویکتور هوگو الگو بگیرید و با ایجاد آنچه روانشناسان تحت عنوان ابزار تعهد میشناسند، عادت‌های بدتان را دشوار کنید. ابزار تعهد انتخابی در حال حاضر است که اقدامات آینده شما را کنترل می‌کند. روی کردیست که رفتارتان در آینده را تعیین می‌کند. شما را به عادت‌های خوب مقید می‌کند و از عادت‌های بد می می‌دارد. وقتی ویکتور هوگو لباس‌ها را از خودش دور کرد، تا بتواند بر نوشتن تمرکز کند در حال ایجاد یک ابزار تعهد بود. راه های زیادی برای ایجاد یک ابزار تعهد وجود دارند. می توانید به جای خرید کلی و امده غذا با خرید بستعی غذا عادت پرخوریتان را کاهش دهید. می توانید دافتلبانه درخواست کنید که شما را در فهرست سیاه کازینوها و سایت های پوکر آنلاین بگذارند تا از ولگردی ها و قماربازی های آتی جلوگیری شود. حتی شنیده هم ورزشکاران برای اینکه قبل از مسابقات به وزن دلخواه برسند، کیف پولشان را از قصد در خانه جا میگذارند تا برای خرید فست فود وسوسه نشوند. به عنوان یک مثال دیگر دوست و همکارم نیر آیال که در زمینه ها تخصص دارد، یک تایمر خروجی خرید. این تایمر آداپتوری بود که بین روتر اینترنت و پریز برق قرار می گرفت. هر شب ساعت ده، تایمر برق روتر را قطع می کرد. وقتی اینترنت خاموش می شد، همه متوجه می شدند که زمان رفتن به رخت خواب فرا رسیده است. ابزارهای تعهد مفیدند، زیرا به شما کمک می کنند پیش از اینکه قربانی وسوسه ها شوید، بتوانید به مقاصد مفید خود برسید. مثلا هر زمان که می خواهم مصرف کالوریم را کم کنم، از گارسون می‌خواهم پیش از سرو غذا وعده غذایم را نصف کند. اگر صبر کنم تا غذا را کامل بیاورند و بعد با خودم قرار بگذارم که نصفش را بخورم، هیچگاه موفق نخواهم شد. نکته کلیدی تغییر در وظیفه است، بگونه ای که شروع به عادت خوب خیلی ساده تر از ترک آن باشد. اگر انگیزه لازم را برای رسیدن به تناسب اندام دارید، یک جلسه یوگا را در برنامه ها بگذارید و از پیش هزینهاش را پرداخت کنید. اگر درباره شروع یک کسب و کار جدید هیجان دارید، به کارافرینی که مورد قبولتان است، ایمیل بزنید و قرار مشاوره را ترتیب دهید. وقتی زمان اقدام فرارسید، تنها راه فرارتان لغو جلسه است که برای این کار باید تلاش مزعفی انجام دهید یا حتی ضرر مالی را متقبل شوید. ابزارهای تعهد با دشوار کردن اجرای عادات بد در حال حاضر، احتمال اجرای کار صحیح در آینده را افزایش دهند. اما می توانیم بهتر از این هم عمل کنیم می توانیم عادات خوب را ناگزیر و عادات بد را غیر ممکن کنیم چگونه یک عادت را به ناخداگاه بفرستیم و دیگر درباره اش فکر نکنیم جان هنری پترسون در سال 1844 در دیتون اوهایو متولد شد. او دوران کودکی خود را صرف کار روی مزرعه خانوادگی کرد و به صورت شیفتی در کارخانه چوب بری پدر نیز کار می‌کرد. پترسون پس از تحصیل در کالج دارتموس به اوهایو برگشت و یک مغازه فروش تجهیزات معدن باز کرد. فرصت خوبی به نظر می رسید، آن فروشگاه خیلی رقیب نداشت و می توانست مشتریان ثابتی داشته باشد، اما کماکان از نظر درآمدی دست و پا می زد. همانجا بود که پترسون متوجه شد کارکنانش از او دزدی می کنند. در عواست سده 1800 دزدی کارکنان یک مسئله شایع بود، رسیدها در یک کشوی باز نگهداری می شدند. و می توانستند به سادگی تعویض یا منحدم شوند هیچ دوربینی نبود که بر رفتار کارکنان نظارت کند و نرم برای رهگیری تراکنش ها وجود نداشت جلوگیری از دزدی امکان نداشت مگر اینکه شخصا کل روز را بر کار کارکنان نظارت میکرد یا همه تراکنش ها را تحت نظر می گرفت همانطور که پترسون در گیرودار مشکل خود بود، به تبلیغی برای یک اختراع جدید برخورد که حسابدار فساد ناپذیر ریتی نام داشت. این سیستم که توسط یکی دیگر از ساکنان دیتون به نام جیمز ریتی تراحی شده بود، اولین صندوق پول شمار محسوب می شد. این دستگاه به صورت خودکار صندوق را قفل می کرد و رسیدهای هر تراکنش، داخل آن میماندند پترسون دو عدد صندوق را هر کدام به قیمت پنجاه دلار خرید دوستی کارکنان در فروشگاه او یک شبه از بین رفت طی شش ماه آتی کسب و کار پترسون از ضرردهی به سود هزار دلاری رسید مبلغی که معادل با هزار دلار امروز است پترسون آنقدر تحت تاثیر دستگاه قرار گرفت که کسب و کارش را عوض کرد او حق اختراع ریتی را خرید و کمپانی ملی صندوق پول شمار را افتتاح کرد ده سال بعد صندوق پول شمار ملی بیش از هزار کارمند داشت و در مسیر تبدیل شدن به موفقترین کسب و کار آن دوران بود. بهترین راه برای شکستن یک عادت بد، این است که اجرای آن را غیر ممکن کنیم استکاک را افزایش دهید تا جایی که دیگر گزینه‌ای برای اقدام نداشته باشید. نبوغ صندوق پول شمار در جایی بود که با غیرممکن کردن دزدی رفتار اخلاقی را به صورت ناخودآگاه تثبیت می‌کرد. به جای اینکه برای تغییر کارکنان تلاش کند، رفتار ارجه را به صورت پیشفرض جا انداخت. برخی اقدامات همچون نسب صندوق پول شمار بارها و بارها جواب پس دادند این انتخابها که کافیست یک بار انجام شوند نیازمند اندکی تلاش پیشا پیش هستند اما در گذر زمان ارزش آفرینی می کنند همین که یک انتخاب واحد می تواند در گذر زمان بارها و بارها ارزش آفرینی کند من را مجذوب می کند و از مخاطبانم درباره این گونه اقدامات یک باره محبوبشان که به عادتهای بهتر در طولانی مدت ختم میشوند پرسیدم در ادامه تعدادی از محبوب ترین پاسخ ارائه شده را به اشتراک می گذاریم شرط میبندم اگر یک فرد معمولی فقط نیمی از اتفاقات یک باره این فهرست را انجام دهد حتی اگر هیچ تجدید نظر دوباره ای درباره سایر عاداتش نداشته باشد از این به بعد زندگی بهتری خواهد داشت این اقدامات یکباره باره روش های سرراستی برای بکارگیری قانون سوم تغییر رفتار هستند آنها خواب خوب، خوراک سالم، بهرهوری، پسانداز و در کل زندگی بهتر را صدهتر می کنند. اقدامات یکبار که عادات خوب را تعیین می کنند. تغذیه. یک فیلتر آب بخرید تا آب نوشیدنی شما را تمیز کند از بشخاب های کوچکتر استفاده کنید تا میزان کالری دریافتیتان، کاهش بیا خواب یک تشک خوب بخرید پرده های خاموشی بگیرید تلویزیون را از اتاق خوابتان بیرون ببرید بهرهوری اشتراک خود در گروه های ایمیلی را قطع کنید هشدارها را خاموش کنید و چت های گروهی را در حالت سایلنت بگذارید. گوشی خود را در حالت بی قرار دهید. از فیلترهای ایمیل برای پاکسازی صندوق دریافتتان استفاده کنید. بازیها و اپهای شبکه های اجتماعی را از گوشی خود حذف کنید. خوشحالی یک سگ بگیرید. به یک محله گرم و سمیمی نقل مکان کنید. سلامت عمومی واکسن بزنید. کفش خوب بخرید تا کمر درد نگیرید. یک صندلی با پشتی خوب یا یک میز برای کار سرپا بگیرید. امور مالی در یک برنامه پسنداز خودکار شرکت کنید. سیستم پرداخت قبض خودکار را برپا کنید. سرویس کابلی بگیرید. از تأمین کننده های خدمات بخواهید قبضهایتان را کاهش دهند. البته راه زیادی برای ارسال آدتهای خوب به ناخداگاه و حذف آدتهای بد وجود دارد. معمولا آنها تکنولوژی را به خدمت شما در میآورند. تکنولوژی میتواند کارهایی را که زمانی دشوار، آزاردهنده و پیچیده بودند به رفتارهایی تبدیل کند که ساده، بدون مشکل و آسان هستند این مطمئنترین و ترین راه برای تضمین رفتار صحیح از سوی شماست این روند به خصوص برای رفتارهایی جواب می دهد که خیلی مداوم انجام نمی گیرند تا به عادت تبدیل شوند. کارهایی که مجبورید ماهی یک بار یا سالی یک بار انجام دهید. همانند تغییر توازن در سبد سرمایه گذاری، هیچگاه آنقدر مداوم تکرار نمی شوند که به عادت تبدیل شوند، بنابراین، می توانید از تکنولوژی بهره بگیرید تا اجرای این عادتها را به یادتان بیاندازد. نمونه های دیگر عبارتند از دارو نسخه ها می توانند به صورت خودکار شارژ مجدد شوند. امور مالی شخصی کارکنان می توانند با یک طرح کاهش حقوق خودکار برای بازنشستگی خود پول پسنداز کنند. آشپزی سرویس‌های تحویل غذا می خرید خاربار را برای شما انجام دهند. بهرهوری گشت و گذار در رسانه های اجتماعی می با استفاده از یک مسدود کننده وبسایت قطع شود وقتی بتوانید عمده زندگی خود را به صورت ناخداگاه انجام دهید، میتوانید تلاشتان را روی وظایفی معطوف کنید که دستگاه ها هنوز قادر به انجام آن نیستند. هر عادتی را که به دستان تکنولوژی می سپاریم، زمان و انرژی را که باید به مرحله بعدی رشد اختصاص داده شود، کاهش می دهد، همانطور که آلفرد نورس هد ریاضیدان و فیلسوف نوشته است تمدن با گسترش تعداد عملیاتی که می بدون تفکر و به صورت ناخودآگاه انجامشان دهیم پیشرفت می کند البته قدرت تکنولوژی می تواند علیه ما هم عمل کند تماشای بیش از حد تلویزیون عادتی است که متوقف کردن آن به تلاش بیشتری نسبت به تداوم آن نیاز دارد به جای اینکه برای رفتن به قسمت بعدی سریال یک دکمه را فشار دهید، نتفلیکس یا یوتیوب کاری کردهاند که بعدی به صورت خودکار پخش شود. تنها کاری که باید انجام دهید، باز نگه داشتن چشم‌هایتان است. تکنولوژی آنقدر کار را راحت کرده است که شما را قادر می‌کند بر اساس کوچکترین ها و تمایلاتتان عمل کنید. همین که اندکی گرسنه نشدید، می توانید قضا را در منزل خود تحویل بگیرید. اگر اندکی حوصلهتان سر رفت، می توانید در فضای گسترده رسانه های اجتماعی غرق شوید. وقتی برای اقدام بر اساس تمایلاتتان به کمترین تلاش ممکن نیاز است، به جایی می رسید که هر لحظه هر چه میلتان کشید در دستان شما قرار می گیرد. نکته منفی اتوماسیون یا خودکارسازی این است که از یک وظیفه ساده سراغ وظیفه ساده بعدی میرویم بدون اینکه برای کارهای دشوارتر که البته در نهایت پاداش بیشتری به همراه دارند وقت بگذاریم. غالبا هر بار که حالم خوش نیست سراغ استفاده از شبکه های اجتماعی میروم. اگر فقط به مدت کسری از ثانیه حوصله‌ام سر برود گوشی را برمیدارم. خیلی ساده می‌توان این انحراف‌های کوچک را با عبارت فقط یک وقفه کوچک توصیف کرد، اما به تدریج آنها انباشته شده و به یک مسئله جدی تبدیل می شوند. تقلای مداوم و گفتن عبارت فقط یک دقیقه دیگر باعث می شود که نتوانم به هیچ کار مهمی برسم. فقط من اینگونه نیستم. یک آدم معمولی روزانه بیش از دو ساعت را در شبکههای اجتماعی میگذراند. اگر در طول یک سال 600 ساعت اضافی به شما بدهند، چه کارهایی میتوانید با آن انجام دهید؟ در طول سالی که در حال نگارش این کتاب بودم، یک استراتژی جدید را برای مدیریت زمان آزمودم. هر دوشنبه دستیارم رمز عبور همه ی حسابهای شبکههای اجتماعی من را ریست می میکرد. که باعث می شد همه دستگاه های الکترونیکی هم از این شبکه ها خارج شوند. جمعه ها رمز عبور جدید را برایم میفرستاد. كل کل آخر هفته را وقت داشتم تا از رسانه های اجتماعی لذت ببرم و با فرارسیدن صبح دوشنبه همین اتفاق تکرار می شد. اگر دستیار ندارید، با یک دوست یا عضو خانواده همکاری کنید و رمز عبور یکدیگر را هر هفته ریست کنید. یکی از بزرگترین ها سرعت من در آداپته شدن با این شرایط بود. طی هفته اولی که از رسانه های اجتماعی دور بودم، متوجه شدم لزومی ندارد هر چند ساعت یک بار سراغ آنها بروم و قطعاً نیازی به انجام هر روزه این کار نیست. چک کردن شبکه های اجتماعی آنقدر ساده بود که به صورت پیشفرض سراغشان می رفتم. زمانی غلبه بر این عادت بد غیرممکن بود. اما متوجه شدم که حقیقتا دوست دارم روی وظایف مهمتری وقت صرف کنم. پس از اینکه دندان لغ را بیرون آوردم، دیگر راحتتر می توانستم به کارهای سالم تر برسم. وقتی اتوماسیون به نفع شما عمل کند می تواناند عادت خوب شما را ناگذیر و عادت های بدتان را غیر ممکن کند. بهتر است به رفتار آینده توجه کنید تا اینکه بخواهید به قدرت اراده در حال حاضر اتکا کنید با استفاده از ابزارهای تعهد تصمیمات یکباره استراتژیک و تکنولوژی میتوانید توانید محیطی از ناگذیرها بسازید. فضایی که در آن عادتهای خوب نه صرفاً یک نتیجه مطلوب و رویایی بلکه یک خروجی عملاً تضمین شده هستند. خلاصه فصل اکثر قانون سوم تغییر رفتار می گوید، آن را دشوار کنید. ابزار تعهد انتخابی است که در حال حاضر انجام میدهید. تا رفتار بهتر شما برای آینده تضمین شود برای اینکه رفتارهای آینده خود را تضمین کنید باید عادت‌هایتان را به ذهن ناخداگاه منتقل کنید تصمیمات یک نظیر خرید یک تشک بهتر یا ثبت نام در یک برنامه پسنداز خودکار اقداماتی هستند که عادت‌های آینده شما را به صورت ناخداغاه در می آورند و به تدریج بازده فضاینده ای را به همراه خواهند داشت بهرهبرداری از تکنولوژی برای اتوماسیون عادتها مطمئن ترین و مؤثرترین راه برای تضمین رفتار صحیح است نحوه ایجاد یک عادت خوب قانون اول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 که رفتار مطلوب شما به مصابه رفتار معمول آنها باشد. سه دو یک رسم انگیزشی بسازید. کاری که از آن لذت میبرید را بلافاصله پیش از یک عادت دشوار انجام دهید. قانون سوم آن را ساده کنید. یک سه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 مسلط شوید انتخاب های کوچکی را که تاثیرات قابل توجه به همراه دارند بهینه کنید چهار سه. از قانون دو دقیقی استفاده کنید مقیاس هایتان را فشرده تر کنید تا بتوانید آنها را طی دو دقیقه یا کمتر انجام دهید پنج سه عادت‌هایتان را به ناخودداگاه منتقل کنید. روی سرمایه گذاری و تصمیمات یکباره حساب باز کنید تا رفتار آینده شما تضمین شود. قانون چهارم آن را رضایت بخش کنید. نحوه شکستن یک عادت بد. قانون اول آن را مخفی کنید. پنج یک. میزان قرار گرفتن خود در معرض آنها را کاهش دهید. سرنخ های عادات بد را از محیط خود حذف کنید. قانون دوم آن را غیر جذاب کنید. چهار دو، ذهنیت خود را تغییر دهید. عواید اجتناب از های بدتان را برجسته کنید. قانون سوم: آن را دشوار کنید. شش سه استکاک را افزایش دهید. تعداد گام‌های میان شما و های بدتان را بیشتر کنید. هفته سه. از ابزار تعهد بهره بگیرید. انتخابهای آتی خود را به آنهایی محدود کنید که به نفعتان تمام می شوند. قانون چهار آن را عامل نارضایتی کنید. می توانید یک نسخه کامل و قابل پرینت از این جداول را از سایت نشر نوین، به آدرس نشر newin.ir صفحه مربوط به کتاب های اتمی دانلود کنید. در اواخر دهه 90 یکی از کارکنان بخش سلامت عمومی به نام استفن لوبی زادگاه خود یعنی اماهای نبراسکار را ترک کرد و بلیتی یک طرفه به سمت کراچی پاکستان خرید. کراچی یکی از پر جمعیت ترین شهرهای دنیا بود. در سال 1998 بیش از 9 میلیون نفر در آن سکونت داشتند. این شهر مرکز اقتصادی پاکستان و یک قطب ترابری بود جایی که تعدادی از فعالترین ترین فرودگاه ها و بنادر منطقه در آن حضور داشتند در بخشای بازرگانی شهر می توانید همه امکانات شهری استاندارد و خیابان های شلوغ مرکز شهر را بیابید اما از سوی دیگر کراچی یکی از بدترین مناطق مسکونی در کل دنیا محسوب می شد. بیش از شست درصد از ساکنان کراچی در اقامتگاه‌های نامتعارف و زاغه‌ها زندگی می‌کنند. این محله‌ها که جمعیت متراکمی دارند، پر از زاغه‌هایی است که از تخته‌های قدیمی، آجرهای سیمانی سبک و سایر مواد ضایعاتی برای سرهمبندیشان استفاده شده است. هیچ گونه سیستم دفع زباله، شبکه الکتریسیته و مخزن آب تمیز وجود نداشت. وقتی آب و هوا خشک بود، خیابانها ترکیبی از غبار و زباله بودند. وقتی هوا مرتوب می شد، به های پر از گل و فاضلاب تبدیل می شدند. گروه پشه ها در منابع آب راکد پرورش می و بچه ها میان زباله ها بازی می کردند. شرایط غیر بهداشتی باعث بیماری های ای می شد. آب آلوده، اپیدمی اسهال استفراغ و شکم درد را به وجود می آورد. تقریباً یک سوم کودکانی که آنجا زندگی می کردند سوء تغذیه داشتند. با توجه به تعداد افرادی که در یک فضای کوچک زندگی می کردند ویروسی و باکتریایی به سرعت گسترش می آفد. این بحران سلامت عمومی بود که استفن لوبی را به پاکستان کشاند. لوبی و تیمش متوجه شدند در محیطی که بهداشت ضعیف باشد عادت ساده شستشوی دستها ها می تواند تفاوت قابل توجهی را در میزان سلامت ساکنان به وجود آورد اما خیلی زود فهمیدند که بسیاری از افراد از قبل به اهمیت شستشوی دست واقف بودند با این حال علی رغم اطلاع از این موضوع بسیاری از ساکنان دست را به شکل جسته و گریخته میشستند. برخی افراد سرند دستهایشان را خیلی سریع زیر آب می و بیرون می آوردند. برخی دیگر فقط یک دستشان را می شستند. بسیاری از آنها اصلا فراموش می کردند قبل از آمادهسازی غذا دستانشان را بشویند. همه می گفتند که شست دست اهمیت دارد. اما تعداد اندکی از آنها به این کار عادت داشتند مشکل نه فقدان آگاهی بلکه ثبات در انجام این کار بود همین زمان بود که لوبی و تیمش با شرکت پراکتر اند گمبل مشارکت کردند تا صابون سیفگارد را در اختیار محله قرار دهد سیفگارد در قیاس با صابون استاندارد و معمول یک تجربه لذت بخشتر را فراهم می کند. لوبی به من گفت، در پاکستان سیفگارد یک سابون اعلا محسوب می شود. شرکت کنندگان در مطالعه همگی از آن داشتند که به این صابون علاقه دارند. صابون به راحتی کف می‌کرد و افراد می دو دست خودشان را با این کفها تمیز کنند. بوی خوبی هم داشت. ناگهان شستشوی دست به یک تجربه مطبوع‌تر تبدیل شد. لوبی گفت: من هدف از تبلیغ شستشوی دست را نه در قالب یک تغییر رفتار، بلکه به عنوان پذیرش یک عادت میدیدم. اگر محصولی در اختیار افراد قرار بگیرد که سیگنال حسی مثبتی را القا کند، نظیر طعم نعنا در خمیر دندان افراد آن را نسبت به آدتهای نچندان مطبوع و لذت بخشی همچون استفاده از نخدندان خیلی راحت تر میپذیرند. تیم بازاریابی پراکتر اند گمبل از تلاش برای ساخت محصول شستشوی دست با تجربه کاربری مثبت میگفت. طی چند ماه محققان تغییر سریعی را در سلامت کودکان محله مشاهده کردند. نرخ حال به میزان 52 درصد، سینه پهلو به میزان 48 درصد و زرد زخم که یک عفونت باکتیریایی پوست است به میزان 35 درصد افت کرد. اثرات طولانی مدت این رو کرد بهتر هم بود. لوبی به من گفت، شش سال بعد به برخی از خانه های کراچی برگشتیم. بیش از 95 درصد خانههایی که صابون رایگان دریافت کرده، و به شستشوی دستها تشویق شده بودند، سینک مخصوصی برای شستشوی دست به همراه آب و صابون داشتند که تیم مطالعه ما از آن بازدید کرد. طی این پنج سال هیچ صابونی را به آن گروه نداده بودیم اما در حین پروسه آزمایش آنقدر به شستن دستایشان عادت کرده بودند که پس از آن نیز همین رویه را حفظ کردند. این یک نمونه قدرتمند از قانون چهارم و پایانی تغییر رفتار است. آن را رضایت بخش کنید. وقتی تجربهی برای ما رضایت بخش باشد، احتمالش بیشتر است که آن رفتار را تکرار کنید. کاملا منطقی است. احساس لذت، حتی لذتهای کوچکی همچون شستن دست با صابونی که بوی خوبی میدهد، و خوب کف می کند سیگنال هایی هستند که به مغز میگویند این کار حس خوبی دارد دوباره انجامش بده لذت به مغز شما یاد می دهد که فلان رفتار ارزش تکرار و به خاطر سپردن را دارد داستان آدامس را در نظر بگیرید آدامس در سرتاسر سر, سر دهه 1800 میلادی به صورت تجاری به فروش می رسید. اما پس از شروع به کار ریگلی در سال 1891 بود که به یک عادت جهانی تبدیل شد. نسخه های اولیه آن از سمقه های نسبتاً بیمزه ساخته می شدند. قابل جویدن بودند، اما نه چندان خوشمزه. ریگلی با افزودن تعمهای نظیر نعنا و میوه به آدامس این صنعت را متحول کرد. زیرا این محصول طعم و بامزه شده بود. سپس آنها یک گام جلوتر رفتند و جویدن آدامس را به عنوان راهکاری برای تمیز کردن دهان برشمردند. مردند. تبلیغ ها به مخاطبان میگفتند که تعم دهان خود را عوض کنید. تعم خوب و حس تازگی دهان باعث گسترش فوری محصول شد و استفاده از آن را رضایت بخش کرد. مصرف آن سر به آسمان سایید و ریگلی به بزرگترین کمپانی آدامس در دنیا تبدیل شد. خمیردندان نیز مسیر مشابهی را طی کرد. تولید با افزودن تعمهای نعنا، پونه و دارچین به محصولاتشان موفقیت بزرگی را تجربه کردند. این تعمها موجب ارتقای بازدهی خمیردندان نشدند، بلکه صرفاً حس تمیزی دندان را ایجاد کرده و تجربه مسواک زدن را مطبوعتر کردند. حتی همسرم استفاده از سنسوداین را متوقف کرد زیرا تعمی را که در دهان باقی می گذاشت دوست نداشت. او سراغ برندی رفت که دارای تعم نعنای بهتری بود و همین امر برای او رضایت بیشتری به همراه داشت. برعکس، اگر یک تجربه رضایت بخش نباشد، دلیل زیادی برای تکرار آن نداریم. بنا به تحقیق خودم، داستان خانومی را شنیدم که یک آشنای نارسیست یعنی خودپرست داشت. دیوانه اش کرده بود. او تلاش تلاشهایی که برای وقت گذرانی کمتر با این فرد خودخواه داشت، سعی می کرد حتی امکان هنگام حضور او خودش را بی و بی تفاوت نشان دهد. پس از چند برخورد، آن فرد خودخواه از او دوری کرد، چون به نظرش شخصیت جالبی برای معاشرت نداشت. داستانهای اینچنینی برهانی برای قانون اصلی تغییر رفتار هستند. آنچه مفید باشد، تکرار خواهد شد. آنچه مضر باشد، دور خواهد شد. کارهای آینده خود را، بر اساس پاداش‌ها یا تنبیهاتی که اقدامات گذشته به همراه داشتهاند تعیین می‌کنید. احساسات مثبت موجب کاشت عادت می‌شوند. احساسات منفی آن را از بین می‌برند. سه قانون اول تغییر رفتار، آن را شفاف و آشکار کنید، آن را جذاب کنید، آن را ساده کنید، احتمال تکرار آن رفتار در همین دفعه را افزایش می‌دهند قانون چهارم تغییر رفتار آن را رضایت بخش کنید احتمال تکرار آن رفتار در دفعه بعد را افزایش می‌دهد این قانون چرخه‌ی عادت را تکمیل می‌کند اما یک نکته وجود دارد ما به دنبال هر نوع رضایتی نمی‌گردیم بلکه رضایت آنی را می‌خواهیم عدم تناسب میان پاداش‌های آنی و متأخر فرض کنید حیوانی هستید که در دشت‌های آفریقا پرسه میزند، یک زرافه یا فیل یا شیر اکثر تصمیماتی که هر روز می‌گیرید یک تاثیر آنی به همراه دارند شما همواره به آنچه می‌خورید یا جایی که می خوابید یا نحوه اجتناب از حیوانات شکارچی فکر می کنید. روی شرایط کنونی یا واهمه هایی که در آینده نزدیک رخ می دهند، تمرکز می کنید. در شرایطی زندگی می کنید که دانشمندان آن را محیط بازده آنی می نامند. زیرا اقداماتتان بلا فاصله نتایج شفاف و آنی به همراه خواهند داشت. حال، به ماهیت انسانی شما برمیگردیم. در جامعه مدرن، بسیاری از انتخابهایی که امروز انجام میدهیم، دهیم، بلا فاصله به ما سودی نمی رسانند. اگر کارتان را به خوبی انجام دهید، چند هفته بعد فیش حقوقی خود را دریافت خواهید کرد. اگر امروز ورزش کنید، شاید سال بعد اضافه وزن نداشته باشید. اگر، امروز پول پسنداز کنید، شاید دهه ها بعد و هنگام بازنشستگی سرمایه کافی داشته باشید. شما در شرایطی زندگی می کنید که دانشمندان آن را محیط بازده متأخر می نامند. زیرا امکان دارد سالها کار کنید و فقط در آن شرایط پاداش مد نظرتان را دریافت کنید. مغز انسان، برای زندگی در محیط بازده متأخر تکامل نیافته است. قدیمیترین بقایای بشر مدرن که تحت عنوان هومو شناخته می‌شوند، عمرشان به حدود دویست هزار سال پیش برمی‌گردد. اینها اولین انسانهایی بودند که مغزی نسبتاً شبیه به ما داشتند. به صورت ویژه می‌توان به نوپسته، جدیدترین بخش مغز، و ناحیه‌ای که مسئول کاربردهای رد بالاتر همچون زبان است اشاره کرد که اندازه آن نسبت به دویست هزار سال پیش تقریباً بدون تغییر مانده است شما حدوداً با همان سختافزاری زندگی می‌کنید که اجداد پالئولیتیکتان داشتند فقط همین اواخر در 500 سال اخیر یا همین حوالی جامعه به سمت محیطی رفت که عمدتا دارای بازده متأخر است در قیاس با سن مغز جامعه مدرن کاملاً جدید است در همین صد سال اخیر ظهور ماشین هواپیما تلویزیون کامپیوتر شخصی اینترنت گوشی هوشمند و بیانسه را مشاهده کرده ایم. دنیا در این سالهای اخیر تغییرات زیادی داشته اما طبیعت انسان چندان تغییر نکرده است اجداد ما همانند حیوانات در دشتهای بی درخت آفریقا روزهای خود را صرف مواجهه با تهدیدات بزرگ تضمین وعده بعدی و پناه گرفتن از شر طوفان کردند. منطقی بود که در آن شرایط ارزش بالایی را برای جوایز و پاداشهای آنی قائل شوند آینده دوردست خیلی موجب نگرانیشان نمیشد. پس از اینکه هزاران نسل از ما در محیطی با بازده آنی زندگی کردند، مغزمان به گونه ای تکامل یافت که پاداش های سریع را به طولانی مدتها ترجیح می دهد. اقتصاددانان رفتاری این گرایش را تحت عنوان ناسازگاری زمانی می شناسند. یعنی، رویکردی که مغزتان برای ارزیابی پاداشها دارد در گذر زمان هماهنگ و یک نواخت نبوده است شما برای حال حاضر ارزش بیشتری نسبت به آینده قائل میشوید معمولاً این گرایش در خدمتتان قرار میگیرد پاداشی که همین الان قطعی است معمولا بیش از پاداش احتمالی در آینده ارزش دارد اما گاهی اوقات گرایش ما به سمت پاداش‌های آنی مشکل ساز می‌شود چرا باید یک نفر سیگار بکشد وقتی می‌داند این کار خطر سرطان ریه را افزایش می‌دهد چرا باید یک نفر پرخوری کند وقتی می‌داند این کار خطر چاقی را به همراه دارد چرا باید یک نفر رابطه غیر ایمن داشته باشد وقتی می‌داند این کار به بیماری های آمیزشی منجر می شود. وقتی متوجه شدید که مغز چگونه پاداش‌ها را اولویت بندی می کند، پاسخ به این سوالات مشخص است. عواقب عادت های بد متأخر هستند، در حالی که پاداش ها به شکل آنی ظاهر می شوند. امکان دارد سیگار کشیدن ده سال دیگر شما را بکشد اما الان استرستان را کاهش می دهد و وسوسه نیکوتینتان را از بین میبرد. پرخوری در طولانی مدت ضرر دارد اما در حال حاضر لذت بخش است. رابطه جنسی ایمن یا غیر ایمن لذت آنی به همراه دارد. بیماری و عفونت، شاید روزها، هفته ها یا حتی سالها زمان نیاز داشته باشد تا خود را نشان دهد. هر عادت چندین نتیجه را در دوره مختلف زمانی به همراه دارد. متاسفانه این خروجی ها غالبا همراستا نیستند. عادت‌های بد ما معمولا در لحظه حس خوبی به همراه دارند. اما نتیجه نهایی آنها بد به نظر می رسد. برای عادت‌های خوب عکس قضیه صدق می کند. خروجی آنی آنها لذت بخش نیست اما نتیجه نهایی خوبی دارند. فردریک باستیا اقتصاددان فرانسوی این مسئله را به سراحت توضیح داده است. این موضوع همواره اتفاق میافتد که وقتی نتیجه آنی مطلوب است، عواقب بعدی فاجعه بارند و برعکس. غالباً هر قدر سمره اولیه یک عادت شیرین تر باشد، سمره های متعاقب آن تلختر خواهد بود. به بیان دیگر عادت های خوب شما در حال حاضر هزینه می گیرند و بعدها سمره می دهند. اما عادت های بد هزینه هایشان را در آینده خواهند گرفت. گرایش مغز برای اولویت دادن به لحظات کنونی بدین معناست که نمی به مقاصد خوب اتکا کنید. وقتی برنامه می ریزید برای کاهش وزن، نوشتن کتاب یا یادگیری زبان در واقع برای آینده‌تان برنامه‌ریزی می‌کنید. وقتی هم آینده زندگی خودتان را تصور می‌کنید، به راحتی می‌توانید ارزش اقداماتی را که عواید بلند مدت به همراه دارند، درک کنید. همه ما زندگی بهتری را برای آیندهمان می‌خوایم، اما وقتی لحظه تصمیم‌گیری فرا رساد، پاداش های آنی معمولاً برنده می شوند. شما دیگر آینده بهتر خودتان را انتخاب نمی کنید که تناسب اندام بهتر، ثروت بیشتر یا رضایت بالاتر دارید شما حال را برمی که دوست دارد معده پر، زندگی اعیانی و سرگرمی داشته باشد به عنوان یک قانون کلی هرقدر لذتی که از یک عمل دریافت می کنید، آنی تر باشد، باید بیش از پیش همراستایی آن با اهداف بلند مدتتان را زیر سؤال ببرید. با درک کامل از عواملی که باعث می مغز ما یک سری رفتارها را تکرار و از برخی دیگر اجتناب کند، بیایید قانون اصلی تغییر رفتار را به روز رسانی کنیم. آنچه پاداش آنی داشته باشد، تکرار خواهد شد. آنچه تنبیه آنی داشته باشد مورد اجتناب قرار میگیرد ترجیح ما برای پاداشهای آنی یک حقیقت مهم را راجع به موفقیت افشا میکند با توجه به سرشت انسان اکثر افراد کل روز را صرف پیگیری رضایتمندیهای کوچک میکنند مسیری که کمتر طی شده جادهٔ پاداشهای متأخر است اگر تمایل دارید منتظر پاداشا بمانید با رقابت کمتری مواجه خواهید شد و غالبا پاداش بزرگتری خواهید گرفت همانطور که ضرب المثل معروف میگوید آن کیلومترهای آخر بیشترین ترافیک را خواهد داشت این همان چیزی است که پژوهش نشان داده اند افرادی که به فکر پاداش های متاخر هستند نمره بالاتری را در آزمون ها می گیرند. نرخ سوء مصرف مواد در آنها کمتر است. احتمال کمتری برای چاقی دارند. واکنششان به استرس بهتر است و مهارت‌های اجتماعی برتری دارند. همگی نقش این موارد را در زندگی خود مشاهده کرده ایم. اگر مشاهده تلویزیون را به تأخیر بیندازید و تکالیفتان را انجام دهید، معمولاً بیشتر یاد می‌گیرید و نمره های بهتری خواهید گرفت. اگر در فروشگاه دسر و چیپس نخرید، غالبا غذاهای سالمتری را در خانه مصرف خواهید کرد. در یک مقطع موفقیت در هر زمینه نیازمند بینشی است که بر اساس آن پاداش‌های آنی را به خاطر پاداش‌های متأخر کنار بگذارید. مشکل اینجاست. اکثر افراد می‌دانند که به تأخیر پاداش یک رویکرد عاقلانه است. آنها اواید عادتهای خوب را می خواهند این که سالم دارای بهرهوری بالا و در آرامش باشند اما به ندرت در لحظات تعین کننده به این نتایج فکر می کنیم. خوشبختانه میتوانیم خودمان را به گونه ای تعلیم دهیم که پاداشها را به تاخیر بیاندازیم. اما در این راستا باید هم راستا با ذات انسان کار کنید نه علیه آن بهترین روش برای این کار افزودن مقداری لذت فوری به عادت است که در طولانی مدت بازده دارند و البته افزودن مقداری رنج آنی به لذت هایی که بازده طولانی مدت ندارند. چگونه پاداش آنی را به نفع خود به کار بگیرید؟ نکته اساسی در پایبند ماندن به یک عادت این است که حس موفقیت به همراه داشته باشد حتی اگر به میزان اندک باشد حس موفقیت سیگنالی است که میگوید عادت شما جواب داده و تلاشتان ارزش داشته است در یک دنیای ایدئال پاداش یک عادت خوب خود عادت است در دنیای واقعی عادت خوب فقط زمانی حس ارزشمندی به همراه خواهند داشت که چیزی را برای شما فراهم کنند در ابتدا فقط باید فداکاری کنید چند بار به باشگاه رفته اید اما قویتر، متناسبتر یا سریعتر تر حداقل نه به آن میزانی که مشهود باشد فقط چند ماه بعد است که چند صد گرم وزن کم می کنید یا بازوهایتان شکل بهتری به خود می گیرد و در این شرایط ورزش کردن ساده تر می شود در ابتدا باید دلیل و هدفی داشته باشید تا در این مسیر باقی بمانید و همین دلیل پاداش‌های آنی ضرورت دارند آنها شما را به وجد می‌آورند در حالی که پاداش‌های متأخر در پشت صحنه روی یکدیگر انباشته می‌شوند شوند. آنچه در اینجا به آن فکر می‌کنیم هنگام بحث درباره پاداش‌های آنی عاقبت رفتار است عاقبت هر تجربه مهم است زیرا بیش از سایر فازها آن را به ذهن می‌سپاریم دوست دارید عاقبت عادتتان رضایت بخش باشد بهترین رویکرد بهره برداری از پروسه تقویت است در این پروسه از پاداش‌های آنی بهره می‌گیرید تا نرخ بروز رفتار را افزایش دهید زنجیر سازی عادت که آن را در فصل پنج توضیح دادیم عادت شما را به یک سرنخ آنی پیوند می زند و بدین ترتیب زمان شروع آن را مشخص میکند تقویت کاری میکند عادت شما با یک پاداش آنی پیوند بخورد که حس رضایت را در زمان پایان کار به وجود می آورد تقویت آنی میتواند برای اجتناب از عادت ها مفید واقع شود جایی که می‌خواهید انجام برخی رفتارها را متوقف کنید، پایبندی به عاداتی مانند عدم انجام خریدهای بیهوده یا عدم مصرف الکل در این ماه می‌تواند دشوار باشد. زیرا وقتی آن ساعات خوش نوشیدن را از دست می‌دهید یا آن کفش را نمی‌خرید، اتفاق خاصی نمی‌افتد. وقتی در وهله اول هیچ اقدامی انجام نمی‌دهید، کسب رضایت دشوار خواهد شد. تنها کاری که انجام می دهید مقاومت در برابر وسوسه هاست و این امر اصلا رضایت بخش نیست. یک راهکار این است که موقعیت را کاملا بچرخانید. باید این اجتناب را در معرض دید بگذارید. یک حساب پسنداز باز کنید و نام آن چیزی که می خواهید را روی آن بگذارید. مثلا کت چرمی. هر زمان که فلان خرید را انجام نمیدهید، پول ذخیره شدن را داخل این حساب بریزید. لاته سر صبح را نخوردید، پنج دلار بریزید داخل آن حساب. این ماه هم اشتراک نتفلیکس نخریدید، ده دلار داخل حساب. انگار یک برنامه وفاداری برای خودتان ساخته اید. پاداش آنی شما این است که پول های پسنداز شده برای خرید کت چرمی را به شکل مشهود می‌بینید و این حس خوبی به شما می دهد. به این ترتیب خرید نکردن را برای خودتان رضایت بخش می کنید. یکی از مخاطبانم و همسرش از یک بستر مشابه بهره گرفتند. آنها دوست داشتند اینقدر غذای بیرون نخورند و آشپزی مشترک را آغاز کردند. برچسب سفر به اروپا را روی حساب پس انداز خود گذاشتند هر زمان که بیرون غذا نمی خوردند 50 دلار به آن حساب می ریختند. آنها در انتهای سال پول لازم برای سفر به اروپا را در اختیار داشتند لازم به ذکر است باید پاداش های کوتاه مدتی انتخاب کنید که همراستا با هویتتان باشد نه آنهایی که با ذات شما تضاد دارند خرید یک کت جدید فقط زمانی جواب می‌دهد که در تلاش برای کاهش وزن یا مطالعه بیشتر باشید اما زمانی که بخواهید پول پسنداز کنید و از مخارجتان بکاهید تصمیم خوبی نیست در عوض گرفتن یک حمام بخار یا یک پیاده‌روی آرام نمونه‌های خوبی هستند که می‌توانید در زمان آزاد از آنها بهره بگیرید و هم راستا با هدف نهایی شما مبنی بر کسب آزادی یا استقلال مالی بیشترند. به همین ترتیب اگر به خاطر ورزش کردن یک کاس بستنی را به خودتان پاداش بدهید، باز هم گرفتار همین تضاد اهداف می شوید و در نهایت به نتیجه خوبی نخواهید رسید. در عوض می توانید ماساج را به عنوان پاداش ورزش در نظر بگیرید که هم کار با است و هم با هدف نهاییتان یعنی مراقبت از بدن همخانی دارد. در این شرایط است که پاداش کوتاه مدت هم راستا با چشمنداز بلند مدت قرار می‌گیرد. یعنی داشتن بدنی سالم. سرانجام وقتی پاداش‌های ذاتی ورزش کردن همچون روحیه بهتر، انرژی بیشتر و استرس کمتر رخنمایاندند نمایاندند، نگرانی و دغدغه کمتری را برای پیگیری پاداشهای های خواهید داشت. هویت شما خودش در نقش تقویت کننده ظاهر می شود. این کار را به خاطر ذات خودتان انجام می دهید و حس خوبی برایتان دارد. هرقدر یک عادت به بخش بزرگتری از زندگی شما تبدیل شود برای پیگیری آن به مشوقهای بیرونی کمتری نیاز خواهید داشت. پاداشها ها می توانند یک عادت را شروع کنند اما هویت است که آن عادت را حفظ می کند. با این اوصاف جمعآوری اسناد و ادله و از ظهور یک هویت جدید به زمان نیاز دارد. تقویت آنی به حفظ انگیزه شما در کوتاه مدت یاری میرساند تا بتوانید منتظر رسیدن پداش های مدت بمانید. مخلص کلام این که یک عادت باید لذت بخش باشد تا پایدار بماند. های کوچک، نظیر صابونی که بوی خوبی دارد یا خمیر دندانی که تعم نعنایش دهان را تازه می‌کند یا مشاهده پنجاه دلاری که در حساب ذخیره می‌شود، می‌توانند آن لذت آنی را برای یک عادت ایجاد کنند. زمانی هم که لذت در میان باشد تغییر ساده است. خلاصه فصل قانون چهارم تغییر رفتار میگوید آن را رضایت بخش کنید. وقتی یک تجربه رضایت بخش باشد تمایل بیشتری به تکرار آن رفتار داریم. مغز انسان به گونه ای تکاملی یافته است. که پاداش‌های آنی را نسبت به پاداش‌های متأخر در اولویت قرار می‌دهد. قانون اصلی تغییر رفتار چنین می‌گوید: آنچه پاداش آنی داشته باشد، تکرار خواهد شد. آنچه تنبیه آنی داشته باشد، مورد اجتناب قرار می‌گیرد. برای پایبندی به عادت، باید حس موفقیت آنی را ایجاد کنید.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 در دفعات بعد افزایش می‌دهد در سال 1993 بانکی در ابوتسفورد کانادا یک کارگزار بورس 23 ساله به نام ترنت درسمید را استخدام کرد ابوتسفورد حومه نسبتا کوچک ونکوور بود و اکثر معاملات کاری بزرگ در ونکوور انجام می‌شد با توجه به موقعیت مکانی و این حقیقت که درسمید یک تازه کار بود، هیچکس انتظار زیادی از او نداشت، اما توانست با انایت به آداتهای روزانهش پیشرفت سریعی داشته باشد. درس مید، هر روز صبح را با دو بطری روی میزش آغاز میکرد، یکی با 120 گیره کاغذ پر شده و دیگری خالی بود. به محض اینکه هر روز سر جایش مستقر میشد، یک تماس بازاریابی برقرار میکرد. بلافاصله پس از آن یک گیره کاغذ را از بطری پر بر می داشت و داخل بطری خالی می انداخت و پروسه را مجددن از سر می گرفت. او به من گفت هر روز صبح کارم را با 120 گیره کاغذ در بطری شروع می کردم و آنقدر تماس می گرفتم تا همه این گیره ها به بطری دوم انتقال داده شوند. یه هجده ماه 5 در مید، پنج میلیون دلار درآمد برای شرکت ایجاد کرده بود. در 24 سالگی سالی 75 هزار دلار در می آورد. معادل 125 هزار دلار امروز. خیلی نگذشت که توانست شغلی با درآمد سالانه شش رقمی را در یک کمپانی دیگر به دست آورد. این تکنیک را استراتژی گیره کاغذ می نامم. از مخاطبانم شنیدم که آن را به طرق متنوع به کار گرفتند. یک خانم هر وقت یک صفحه از کتابش را می نوشت، یک سنجاق سر را از بطری اول به دومی می انداخت. یک آقای دیگر پس از اجرای هر ست دراز و نشست، یک گلوله را از سطل اول به سطل دوم میانداخت. پیشرفت کردن رضایت بخش است و میارهای بسری، همچون انتقال گیره کاغذ یا سنجاق سر یا گلوله اسناد شفافی را درباره پیشرفت شما فراهم می کند. در نتیجه آنها رفتارتان را تقویت می کنند و مقداری رضایتمندی آنی را به هر فعالیت می معیارهای میارهای بسری به فرمهای متنوعی ظاهر می شوند. فهرستهای غذا، آمارهای ورزش، کارت پانچ وفاداری، نوار پیشرفت در دانلود یک نرم افزار، حتی تعداد صفحات یک کتاب، اما شاید بهترین راه برای سنجش پیشرفت استفاده از یک ردیاب عادت است. چگونه عادتهایتان را ردیابی کنید؟ ردیاب عادت یک راه ساده برای سنجش این است که آیا فلان عادت را انجام داده اید؟ پایهی ترین روش انجام این کار تهیه یک تقویم و علامت زدن روزهایی است که به روتین مد نظر پایبند مانده اید مثلا اگر دوشنبه و چهارشنبه و جمعه ها مدیتیشن می‌کنید هر کدام از آن تاریخ‌ها یک ضرب در می‌خورند با گذر زمان تقویم به دفتری برای ثبت عادتهایتان تبدیل می‌شود تعداد زیادی از افراد عادتهایشان را رسد کردند، اما شاید مشهورترینشان بنجامین فرانکلین است. فرانکلین که این کار را از بیست سالگی شروع کرد، یک کتابچه را همه جا با خودش همراه داشت و در آن به رهگیری سیزده خصیصه شخصی میپرداخت. این فهرست شامل اهدافی همچون هیچ زمانی را تلف نکن، همواره به کاری مفید مشغول شو و از گفتگوهای پوچ به بود. در انتهای روز فرانکلین کتابچهش را باز کرده و پیشرفتش را ثبت می کرد. می گویند جری سینفیلد از یک ردیاب عادت برای پایبندی به نوشتن جکایش بهره می گرفت. او در مستند کومیدین می گوید هدفش صرفا این بود که زنجیره نگارش هر روزه شوخیهایش شکسته نشود. به عبارت دیگر کاری نداشت که فلان شوخی به خصوص خوب یا بد است یا چه میزان از آن الهام می‌گیرد. صرفا تمرکزش بر این بود که به عادتش پایبند بماند و بر مجموعه شوخیهایش بیفزاید. زنجیره عادت را نشکن یک شعار قدرتمند است. زنجیره تماس‌های بازاریابی را نشکن و یک کسب و کار موفق خواهی ساخت. زنجیره ورزش را نشکن و سریعتر از آنچه انتظار داری به تناسب اندام خواهی رسید. زنجیره نوآوری هر روز را نشکن و در نهایت به یک پورتفولیوی تأثیر گذار خواهی رسید. ردیابی عادت قدرت زیادی دارد زیرا چندین قانون تغییر رفتار را تقویت می‌کند. همزمان یک عادت را مشهود، جذاب و رضایت بخش می‌کند. بیایید هر کدام از این اواید را جداگانه بررسی کنیم. فایده اول ردیابی عادت مشهود است. ثبت آخرین اقدام نوعی محرک ایجاد می‌کند که کلنگ اقدام بعدی را می‌زند. ردیابی عادت به صورت طبیعی مجموعه ای از سرنخهای بصری همچون ضربدرهای روی تقویم یا فهرست وعده های غذایی را مهیا می کند وقتی به تقویم نگاه می کنید و این مجموعه سر را می بینید، یادتان می آید که این کار را مجددا انجام دهید تحقیقات نشان دادند افرادی که پیشرفت اهدافی نظیر کاهش وزن ترک سیگار و کاهش فشار خون را رسد می کنند، احتمال موفقیتشان بیشتر از سایرین است. مطالعه انجام گرفته روی بیش از 600 نفر نشان داده است. آنهایی که وعده های غذایی نخورده خود را به صورت روزانه فهرست می کنند، بیش از سایرین وزن کم می کنند. صرف رهگیری یک رفتار می جرقه ای برای تغییر باشد. همچنین رهگیری عادت باعث می شود صادق بمانید. اکثر ما درک تحریف شده ای از رفتار خودمان داریم. خودمان را بهتر از واقعیت تصور می‌کنیم. سنجش رفتار راهی در اختیارمان می‌گذارد تا نسبت به رفتارمان دیدگاه درستی پیدا کنیم و متوجه شویم که هر روز چه اتفاقاتی رخ داده است. یک نگاه به گیره های کاغذ داخل بطری بیاندازید و از میزان کاری که انجام داده یا نداده اید مطلع شوید وقتی اسناد پیش روی شما باشند احتمال اینکه به خودتان دروغ بگویید کمتر می شود فایده دوم ردیابی عادت جذاب است پیشرفت مؤثرترین فرم انگیزش است وقتی این سیگنال به ما رسید که در حال پیشروی هستیم انگیزه بیشتری را برای ادامه مسیر خواهیم داشت در این راستا ردیابی عادت می‌تواند یک تاثیر اعتیادآور را روی انگیزش داشته باشد هر پیروزی کوچک موجب تقویت تمایلات شما خواهد شد مخصوصا اگر روز بدی داشته باشید این موضوع نقش مهمتری دارد. وقتی حس سرشکستگی دارید، به راحتی میتوانید کل پیشرفتی که داشته اید را فراموش کنید. ردیابی عادت، سندی بسری از میزان سختگوشی شماست. به شما یادآوری میکند که تا کجا پیش آمده اید. همچنین، آن مربع خالی که هر روز صبح مشاهده میکنید، به شما برای شروع کار انگیزه میدهد، زیرا، دوست ندارید با شکستن این عادت پیشرفت خود را از دست بدهید. فایده سوم ردیابی عادت، رضایت بخش است. این حیاتی ترین فایده است. پروسه ردیابی می تواند به خودی خود یک فرم از پاداش باشد. همین که یک آیتم را از فهرست وظایف آتی خود خارج کنید، یکی از بخش های برنامه ورزشی خود را تکمیل کنید یا یک ضربدر روی تقویمتان بگذارید رضایت بخش است همین که ببینید نتایجتان حجم نوشته های کتابتان اندازه پورتفولیوی سرمایه گذاریتان رشد می کنند حس خوبی دارد و احتمال اینکه به کارتان ادامه دهید افزایش می همچنین ردیابی عادت باعث می‌شود به جای نتیجه روی پروسه متمرکز شوید. دیگر، تمرکزتان صرفاً روی ساخت سیکس پک نیست، بلکه میخواهید مجموعه تلاشهایتان تداوم یابد و به فردی تبدیل شوید که جلسات باشگاه را از دست نمیدهد. مخلص کلام این که ردیابی عادت یک، یک سرنخ بسری میسازد تا زمان اقدام را به یادتان بیاورد. دو، ذاتا انگیزاننده است، زیرا میزان پیشرفتی که کرده اید و دوست ندارید از دست بدهید را نشانتان می دهد. و سه، هر زمان که یک نمونه موفقیت آمیز دیگر از عادتتان را ثبت می کنید، موجب رضایتتان می شود. همچنین، ردیابی عادت یک سند بسری را پیش رویتان می گذارد، که هاکی از نزدیک شدن شما به شخصیت مد نظرتان است، و نوعی از رضایت ذاتی و آنی را برایتان فراهم می‌کند شاید پیش خودتان فکر کنید که اگر ردیابی عادت تا این میزان مفید است چرا تا الان صبر کردم و تازه دارم راجع به آن صحبت می‌کنم صرف نظر از همه فواید به یک دلیل ساده این بحث را به اینجا مکول کردم بسیاری از افراد در برابر ایده رهگیری و سنجش مقاومت میکنند میتواند نوعی حس تحمیلی را در شما ایجاد کند زیرا شما را به دو عادت وادار میکند عادتی که در تلاش برای ایجاد آن هستید و عادت به ردیابی این پروسه وقتی در تلاش هستید تا از یک رژیم غذایی پیروی کنید کالری شماری شبیه به یک عذاب است وقتی کارهای زیادی دارید که انجام دهید، نگارش و ثبت هر تماس بازاریابی میتواند خسته کننده به نظر برسد. همین که پیش خودتان بگویید کمتر میخورم یا بیشتر تلاش میکنم یا یادم هست که انجامش بدهم ساده تر است. افراد خواه ناخواه جملاتی نظیر یک فهرست برای تصمیماتم نوشتم، ای کاش بیشتر از آن استفاده میکردم، یا میزان ورزشم را به مدت یک هفته ثبت کردم اما دیگر این کار را ادامه ندادم را میگویند. خودم هم در این جایگاه بودم. یک زمانی فهرستی ایجاد کردم تا میزان کالری هایم را رست کنم. این کار را فقط برای یک وعده انجام دادم و سپس رهایش کردم. ردیابی کار هر کسی نیست و لزومی ندارد که کل زندگی خود را بسنجید. اما تقریبا همه افراد به نوعی از آن منتفع خواهند شد، ولو اگر به صورت موقتی باشد، چه کاری میتوانیم انجام دهیم تا ردیابی ساده تر شود؟ اولا هر زمان که ممکن بود باید سنجش را به صورت خودکار انجام دهید، احتمالا وقتی متوجه شوید که تا همین الان هم چه میزان امور مختلف را رسد می کردید خودتان متعجب خواهید شد. صورت حساب کارت اعتباری شما تعداد دفعاتی که بیرون غذا می‌خورید را رصد می کند. آمارهای ثبت شده در فیت بیت تعداد گامهایی که برداشتید و میزان خوابتان را رصد کند. تقویم تعداد جاهای جدیدی که در هر سال سفر کرده اید را رصد کند. وقتی محل دریافت این داده‌ها را متوجه شدید، یک یادداشت به تقویمتان اضافه کرده تا هر هفته یا هر ماه آنها را مرور کنید، زیرا ردیابی ماهانه راحتتر از ردیابی روزانه جواب می دهد. ردیابی باید به مهمترین هایتان محدود شود. بهتر است که یک عادت را به صورت مداوم رسد کنید تا اینکه ده آدت را جست و گریخته تحت نظر داشته باشید. در نهایت، هر مقدار را بلا فاصله پس از وقوع عادت ثبت کنید. به محض اینکه رفتارتان تکمیل شد، باید آن را بنویسید. این روی کرد به شما اجازه می دهد روش زنجیرسازی عادت که در فصل پنج مطرح شد را با ردیابی عادت ترکیب کنید. فرمول زنجیرسازی عادت به اضافه ردیابی عادت چنین می شود. پس از عادت کنونی آن عادت را رسد خواهم کرد. پس از اینکه تماس بازاریابی را گرفتم و گوشی را قطع کردم گیره کاغذ را از بطری اول به دومی جابجا جا خواهم کرد. پس از اینکه هر ست را در باشگاه تمام کردم آن را در ژورنال ورزشیم می نویسم. پس از اینکه بشقابم را در ظرفشویی گذاشتم آنچه خوردم را یادداشت می کنم. این تاکتیکا می‌توانند ردیابی عادتهایتان را ساده‌تر کنند. حتی اگر از آن دست اشخاصی نباشید که از ثبت کردن رفتارهایش لذت ببرد، به نظرم چند هفته سنجش می‌تواند موجب افزایش بینش شما شود. همواره مشاهده مقدار زمانی که روی یک کار صرف می‌کنید، می‌تواند جالب باشد. با این اصاف باز هم هر مجموعه عادت در یک مقتع به پایان می رسد. از سنجش های جداگانه، این است که در زمان انقضای عادتهای کنونی برنامه خوبی برای ادامه داشته باشید. چگونه پس از شکست شدن زنجیره عادتها بازیابی سریعی داشته باشید؟ فرقی نمی کند چه میزان به عادتهایتان پای بند باشید. در یک مقطع زمانی عادات شما مورد مداخله زندگی قرار خواهند گرفت. ایدئال بودن ممکن نیست. خیلی طول نمی‌کشد که یک کار اضطراری رخ می‌دهد. مریض می‌شوید یا یک سفر کاری اجباری پیش می‌آید یا خانواده دوست دارد مدت زمان بیشتری را به آنها اختصاص دهید. هر زمان که این اتفاق برای من رخ دهد یک قانون ساده را به خودم یادآوری می کنم. هیچ وقت یک چیز را دوبار از دست نده. اگر یک روز موفق به اجرای آن عادت نشدم، سعی می کنم هرچه سریتر به سراغ آن بازگردم. نرفتن به یک جلسه باشگاه پیش می آید، اما قرار نیست چند جلسه پشت هم را نروم. شاید یک پیتزا بخورم، اما بعدی غذای بعدی حتما سالم خواهد بود. نمیتوانم ایدئال و کامل باشم اما میتوانم از لغزش های جلوگیری کنم. به محض اینکه یک مجموعه عادت تمام شد بعدی را آغاز می کنم. اولین اشتباه هیچگاه شما را نابود نمی کند بلکه مجموعه اشتباهات مکرر پس از آن عامل نابودی است. یک بار خلف وعده پیش می آید، اما وقتی دوبار این اتفاق رخ داد، یعنی عادت جدیدی شکل گرفته است. یک ویژگی متمایز کننده میان برنده ها و بازنده ها وجود دارد. هر کسی می تواند یک عمل کرده بد، یک ورزش بد یا یک روز بد در محیط کار داشته باشد. اما وقتی آدم های موفق شکست می خورند، سریع برمیگردند گردند. شکسته شدن یک عادت مهم نیست به شرطی که خیلی سریع به مسیر آن برگردید. به نظرم این اصل آنقدر مهم است که حتی اگر نتوانم یک عادت را با کیفیت مد نظرم انجام دهم ده باز هم به آن پایبند خواهم ماند غالباً در یک چرخه همه یا هیچ با عادت‌هایمان گرفتار میشویم. مشکل اشتباه نکردن نیست مشکل اینجاست که فکر می کنید اگر کاری را به درستی انجام نمی دهید پس اصلا نباید سراغ انجامان بروید. نمیدانید که وقتی در روزهای بدتان یا روزهایی که سرتان شلوغ است نیز یک عادت را انجام می دهید چه ارزش‌هایی برایتان به دست خواهد آمد. آنقدری که روزهای شکست به شما آسیب میزنند، روزهای موفق نمی توانند کمکتان کنند. اگر کارتان را با 100 دلار آغاز کنید، یک سود 50 درصدی شما را به 150 دلار خواهد رساند. اما با یک ضرر 33 درصدی دوباره به همان 100 دلار اولیه باز خواهید گشت. به عبارت دیگر، اجتناب از یک ضرر 33 درصدی به اندازه کسب یک سود 50 درصدی ارزش دارد. همانطور که چارلی مانگر میگوید، اولین قانون سودندوزی هیچگاه مداخله غیر ضروری انجام ندهید. به همین دلیل است که ورزش‌های بد غالباً بیشترین میزان اهمیت را دارند. روزهای تنبلی و ورزش‌هایی که بد پیش می‌روند، باعث اسم می‌شوند روند کسب عواید که از روزهای پیشین آغاز شده تداوم یابد. همین که حرکتی بزنید، ده اسکات، 5 استارت سرعتی، یک درازونش است. کلن هر چیزی ارزش زیادی دارد. هیچ وقت صفر را انتخاب نکنید. نگذارید که شکست ها فرایند سود اندوزی شما را متوقف کنند. همچنین همیشه فقط آنچه در حین ورزش رخ می دهد مهم نیست. بلکه باید از آن شخصیت هایی باشید که هیچ جلسه ورزشی را از دست نمی دهد. وقتی حس خوبی دارید تمرین کردن آسان است. اما باید آن زمانی که حس و حال درستی ندارید به میدان بیایید حتی اگر عملکردتان مطابق انتظارات نباشد شاید پنج دقیقه باشگاه رفتن نتواند موجب بهبود عملکردتان شود اما تاکید مجددی روی هویتتان است چرخه همه یا هیچ در زمینه تغییر رفتار پرتگاهی است که میتواند عادت‌هایتان را از مسیر خارج کند یکی دیگر از خطرات بلقوه، بخصوص اگر از یک ردیاب عادت استفاده کنید، سنجش مسائل بی ربط و نادرست است. اطلاع از زمانی که باید یا نباید یک عادت را رسد کنید. فرض کنید یک رستوران دارید و می خواهید بفهمید که آیا سراشپزتان کارش را خوب انجام می‌دهد یا خیر یک راه برای سنجش موفقیت رهگیری میزان هزینه‌هایی است که مشتریان هر روز برای یک وعده غذایی می‌پردازند اگر مشتریان بیشتری بیایند پس غذا خوب است اگر مشتریان کمتری می‌آیند پس احتمالا یک جای کار میلنگد اما همین یک سنجه درآمد روزانه فقط تصویر محدودی از رخدات های جاری ارائه میکند صرفن اینکه یک نفر برای غذا پول میدهد لزوما بدین معنا نیست که از آن لذت میبرد حتی مشتریان ناراضی هم هنگام خروج از رستوران پول میدهند در واقع اگر صرفاً درآمد را اندازه بگیرید امکان دارد کیفیت غذا بدتر شود اما با بازاریابی یا تخفیف یا روش های دیگر این بیکیفیتی را جبران کنید. در عوض بررسی تعداد مشتریانی که کل غذا را می‌خورند یا درصد مشتریانی که انعام سخاوتمندانهی را پس از صرف غذا پرداخت می کنند می بسیار بهتر باشد. و چه تاریک رهگیری یک رفتار ویژه این است که به جای اهداف خیلی درگیر آمار و ارقام می شوید. اگر موفقیت شما با درامتهای سموه سنجیده شود، فروش، درآمد و حسابداری را بر اساس درامتهای سموه سازی خواهید کرد. اگر موفقیتتان بر اساس وزن کمتر روی ترازو سنجیده شود، شرایط را برای نمایش عدد کمتر روی ترازو سازی خواهید کرد. حتی اگر به قیمت پذیرش رژیمهای افراتی شامل رژیم صرفن میوه و سبزیجات، یا قورس لاغری باشد ذهن انسان دوست دارد در هر بازی که شرکت میکند برنده شود نقطه ضعف این قضیه در بسیاری از حوزه های زندگی مشهود است بیشتر بر ساعت کاری طولانی تمرکز میکنیم نه اینکه یک کار معنادار و هدفمند را انجام دهیم بیش از اینکه به سلامت اهمیت بدهیم دوست داریم هدفمان مبنی بر برداشتن ده هزار گام را برآورده کنیم. به جای اینکه تحکید روی یادگیری، کنجکاوی و تفکر انتقادی باشد، افراد را صرفا برای آزمونهای استاندارد آماده می کنیم. مخلص کلام اینکه شرایط را برای موارد قابل سنجش بهینه می کنیم. وقتی سنجه نادرست را انتخاب کنیم، رفتار نادرست در ما شکل می گیرد. گاهی اوقات این امر را تحت عنوان قانون گودهارت میشناسند. این اصل که به نام چارلز گودهارت اقتصاددان نامگذاری شده میگوید، وقتی قرار است یک سنجه به هدف شما تبدیل شود باید یک سنجه خوب باشد. سنجش فقط زمانی مفید است که راهنماییتان کند و بتواند بر چهارچوب کلیه شما بیافزاید، نه اینکه کاری کند در آن زوب شوید. هر آمار صرفاً یک خورده بازخورد است که در دل سیستم کلی جای میگیرد در دنیای مبتنی بر داده تمایل داریم ارزش زیادی برای آمار قائل شویم و پدیده‌های زودگذر، نرم و غیر کمی را دست کم می‌گیریم به اشتباه فکر می‌کنیم فاکتورهایی که می‌توانیم اندازه بگیریم تنها فاکتورهای موجود هستند اما صرف اینکه که می توانید یک چیز را بسنجید دلیل نمی شود که آن مسئله از همه مهمتر باشد از سوی دیگر اگر موضوعی به صورت کمی قابل سنجش نیست دلیل نمی شود که اهمیت نداشته باشد منظورم این است که باید ردیابی عادت را در جایگاه صحیح انجام دهید همین که یک عادت را ثبت، و پیشرفتتان را رسد کنید حس رضایت به همراه دارد اما سنجش کمی تنها مسئله مهم نیست در هر حال روشهای زیادی برای سنجش پیشرفت وجود دارند و گاهی اوقات به شما کمک می کنند تمرکزتان را به سمت یک مسئله کاملا متفاوت ببرید به همین دلیل پیروزی های غیر می برای کاهش وزن موثر باشند امکان دارد رقم روی ترازو کل شق باشد و تکان نخورد. بنابراین اگر صرفاً روی آن عدد تمرکز کنید، انگیزهتان از بین خواهد رفت. اما می توانید به وضعیت بهتر پوست یا زودتر بیدار شدن از خواب یا بهبود توان جنسی خود توجه کنید. همه این موارد روش های معتبری برای رهگیری بهبود و پیشرفتتان هستند. اگر، عدد روی ترازو به شما انگیزه نمیدهد شاید وقت آن رسیده که بر یک سنجه متفاوت تمرکز کنید. سنجه که سیگنال های بیشتری برای موفقیتتان ارسال کند. مهم نیست که پیشرفتتان را چطور می سنجید چون ردیابی عادت یک راه ساده را برای افزایش حس رضایتمندی از عاداتتان ارائه می کند. هر سنجه اسناد و مدارکی را فراهم میکند که میگوید در مسیر صحیحی قرار دارید و یک لذت آنی و هرچند کوتاه را به واسطه ی صحت انجام امور در شما ایجاد میکند. خلاصه فصل یکی از رضایت بخش ترین حس احساس پیشرفت کردن است. ردیاب عادت یک راه ساده برای سنجش اجرای یک عادت است. همچون علامت ضربدری که روی تقویم زده می شود. ردیاب های عادت و سایر فرم های سنجش بصری می توانند با فراهمسازی اسناد شفاف راجع به پیشرفت باعث افزایش رضایت بخشی عاداتتان شوند. زنجیره عادت را نشکنید. سعی کنید مجموع عادتهایتان را زنده نگه دارید. هیچ وقت دوبار پشت سر هم یک عادت را از دست ندهید. اگر یک روز کاری نکردید، سعی کنید هرچه چه تر به مسیر اصلی خود بازگردید. صرف این یک مسئله قابل اندازگیری است، دلیل نمی شود که اهمیت بیشتری داشته باشد.